لعنت خدا بالای اشخاص لعنت خدا را بالای اشخاص انوان کردن از نگاه شریعت اسلامی چه اکم داره؟ خب اکمش از دیدگاه شریعت اسلامی است که در حدیث شریف بیان شده که لعنت به خود انسان ضرر می چه قصد؟ عن أبي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي درداء ما أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بك مايقول إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنته إلى السماء وقت يكسي يكسر يكسر اللعنة مايكونا إلى نتجميع بطرف أصابنها درست فتغلق أبواب السماء دونها و تغلق و ابواب سمای دونه ها دروازه های میگه اما آسمان در مقابل این لعنت چی میباشه بسته میشه که <متصف> یعنی داخل نشه بالا نره بله با ثمتوه با ال الال باز میگه این لعنت چی میشه دوباره پس پس میگه زمین انداخته میشه <متصف> و تغلق و ها دونه ها باز دروازه های زمین هم در مقابلش بسته میشه یعنی لعنت بالا رفت را بند شد پس آمد به طرف زمین باز را بند شد بحلت دیگه نه سکل کجا میره چی میشه ثم خودو یمینن و شمالا به طرف راست میره و به طرف چپ میره فا ازا لم تجد مساغن وقتی که کسی نبود که شایسته می لعنت باشه پس چی میشه رجعت الى لعنه باز رجوع می کره به مو که لعنت کرده شده قاید کرده. دمو نفر که لعنت کردی دمو او مستحقمی لعنت است وقتی که میری بطرفه زو ف انکان لذالک اهلا اگر ای اهل لعنت بود که یانی برش لعنت گفته شوه خب لعنت سرازو میره اگر نبود والارجعت ال ها و اگر او شخص مستحق لعنت نبود پس میوه می میگوینده لعنت پس سر خود از میشه از خاطر انسان احتیاج بکنه وقتی که یک مسلمان یک نفر لعنت میگن مسلمان خود مستحق لعنت خدا نیست واقعا که او از رحمت خدا من دور شده پس وقتی که او رو لعنت میکنه در حقیقت او لعنت رفت واسمان رفت به زمین رفت کل راست و چپ بالید بالید بالید پس نفر که او رو لعنت کرده بود پیش از اون رفت او هم نبود پس می سر خود گوینده پس خود گوینده چی میشه از رحمت خداوند محروم میشه این نتیجه لعنت گفتن است کسی که دیگران لعنت میگه واقعا جامعه خود فعلا یک اخلاق بسیار بد را مشاهده می کنیم ماج که یک چوز اشخاص بالای اشخاص دیگر نام میمانند بغیر از نام اصلی خودش مثلا قیچ کور سیار, سفید مختلف لقب سرش میمون، لقب, لقب زادگی از نگاه اخلاقی و از نگاه شریعت اسلام شما در این موارد توضیح توزیادید. خب آیه تو قرآن خود درباره از اینکه شما باید سرکرت مردم لقب گذاری و گافا نکنید. خود این لقب ماندن و ایب جویی کردن و بر اساس عیب یک مسلمان سر از یک نام زشت مانده ای از نگاه شریعت اسلامی یک کار بسیار بعد است بله یک مثال از این همینه میگه خود بی بی اشرا ها روایت می کنه میگه قلت صلی الله علیه و سلام که من صفیه کذا و کذا تعنی قصیراتا بله میگه مادر پیامبر گفتم که بر تو درست است که فهم می مو صفیه اونم بی بی صفیه را اون بی بی صفیه که هم قریشی بود بخش بود یعنی مقصدش که بود که اونم قد پخش برای تو درست بس است. یعنی اعی میگه پیغمبر سم چی گفت؟ فقار لقد قلت کلمتم میگه پیغمبر سم برای برای بی بیایشه بی که اتی سخن تو گفتی که لوموز جا به البحر لما تو که اگر اینمی سخن تو به امرای آب بحر گت می شد امی آب گهره بحر مردار می سخن. یعنی صرف یک نفره و چیز نگفته بود گفتونم کسی که منظورش بوده و کفاید میکره که قدر شکمه که پخش است یعنی مقصدشی چی بود که اون پخشی از اون را بیان کردن گفت اینیمی که مثلا ای اینیمی نفره گفتی که قدر پخشش قدر گپ بد گفتی که اگر اینیمی گپ بد تو به امرای آب بحر گهت میشد آب بحر مرداد میسند اینال یک نفر قمک چشماش رنگش سیاه سور زاغ گفتن یک نفر قدر شکرین پخش سور بلیستی گفتن یک نفر قدش بلند سور قدراز قد گفتن مثلا نامهای عجیب عجیب غریب برش گفتن یک نفر یک قمک چشماش چیز سور کور گفتن یک نفر مثلا قیج گفتن یک نفر به عیبش چیز کردن ای کلش کلمات است که آنقدر در شریعت اسلامی بده هست مثل که مرداری از او مردار میکنه وقتی که بهره مردار میکنه چی اعمال نامی انسان از بدی ها پر میکنه از این خاطر انسان مسلمان کوشش میکنه مثل یک رسام باده باشه رسام چی وظیفه داره چی عادت داره رسام عادت داره وقتی که میره در یک جای که یک جای را رسامی بکنن در اون یک منظری خوبتر زیبا تر پیدا میکنن میشه قلم خدا گرفته منظری زیبای زوره رسم میکنه. خب انسان ها کلشون شاید من هم بسیار ازارها عیب دارم خودت داری و دیگه هم داره لیکن انسان مسلمان کوشش میکنه که از جمله اونمو عیب های زور بکسره و صفات مثبت زوره مطرح بکنه بره. نه صفات بده زوره واقعا وقتی که این مسائل مطرح میشه محبت ها را کم میکنه برکت از بین فامیل ها دور میکنه حتی در فامیل ها ما همین مثلا زیادتر مشاهده میکنیم در بین خود فامیل ها برادر بر بالا خواهر خواهر بر برادر همین لقب ها را میگذارند مثلا سوال دیگری که میخوایم مطرح کنم توصیف کردن فاسق فاجر از دیدگاه شریعت اسلامی چه حکم داره خب بعضی انصاره رو ما مشخصشیم و خب شاید کولگی می میفهمر که نمی نفر گناهای بسیار بده میکنه و مثل یک فاسق در پای مردم مشهور است لکن یک نفر به خاطر که او برش پیسه بده یا به از یک کم که عزت پیدا بکنه بزاده. یا او رئیس کنه چی میکنه میخزه توصیف میکنه حضرت انس میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت در صفحه دی بشکات المسابی حدیث شریف است که چی میگه اذا مود الفاسق وغضب رب تعالی واحتزل له العرش رواه البيهقی في شعب الایمان میگه وقت اذا فاسق الفاسق وقتی که مد صفت مشک انسان فاسق غاضب الرب تعالى خداوند غضبناک میشه و حتز له العرش و عرش خداوند با با با اهتزاز و لرزمه که چطور تو یک انسان رو که میفهمی که قدر بدی ها داره و من یک فاسق در بین جامعه مشهور است تو میخیسی اون انسانه توصیف میکنی و او را مدح میکنی و بر مردم میگی انسان بسیار شریف است و به خاطر از از این خاطر این کاری بسیار بد است بله. نباید که یک مسلمان خدا اقعبه شخصیت بسازه که یک انسان فاسق و فاجره به خاطر تملق چاپلوسی توصیف بکنه آیه نمیشه که وقتی که امون فاسق و فاجره توصیف میکنم امون تشویق شود ترغیب شود به طرف کارهای نیک اگر توصیف از او مصبت واقع شود برای امون شخص فاجره یا فاسقی اکفاسی وقتی که توصیف میکنه که تو آدم بسیار شریف هستی تو بسیار خوب هستی او در حقیقت به ازید که با کارای نیک تشویق شد در کار بعد خود دوام دیگه وقتی که من بسیار خوب آدم هستم شراب هم میخورم زناکاری هم میکنم یک, ب... یک یک بل برفش خانه شفتاد دو ست دشنام میتد و برزو گفتم که بسیار آدم شریف خوب هست تو بگیم والا خیمه هیچ کار کارای بعد بلشه... بد چی کن مثلا کلهی نگرد مثلا او تو اگر به با شکل بود که این آدم خوب است، اگر اینی اینی کارای اقدام اصلاح کنه اگر اینی کارای نمی بود که خود تدبیر جامعه یکرما که ضعیف میسازه بسیار بس آدم شریف بودی به اسلوبه دعوتها همه زوره بخواد که گپای خوب بزنه اما اگر خوب او فاسق است او رو مدح میکنن به شکلی که مد و صفت از او انوز سبب میشه که او دم و گناه و خودشی باشه هر تشویق شوه این چه خداوند نازل میشه آیا مسلمان ترک قومی باشه حضرت صفوان ابن سلیمی در درتون روایت میکنه میگه قیل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بر پیغمبر صلی الله گفته شده آیا کون المؤمن الجبار آی میشه که یک مسلمان ترسو باشه میگه پیغمبرستم قرار نمیشه ممکن است یک نفر مسلمان هم باشه که ممکن ترسو هم باشه جبان باشه فقیل له آیا کون المؤمن بخیل قفه ممکن است که یک مسلمان بخیل باشه میگه پیغمبر سلام میگوشه که نه بله ممکن است که یک نفر مسلمان باشه به باشه حقیقی لغو ایا کن المؤمن و کذابا گفته ای مسلمان کذاب می باشه دروغگوی قار الله پیغمبر سلام گفت که نه خیر مسلمان با دروغگوی نمی باشه یعنی دروغگوی مخالف صفات ایمان و مساله اسلام است از این خاطر یک مسلمان کوشش بکنه که تا حد توانش از دروخ خدا نگاه بکنه این دروخویی بدتر از ترسو بودن نسته؟ آه، اینال ترسو میشه یک نفر ذاتان بوده باشه از بسیاری چیزها مثلا میترسه، بعضی کساس که شب از خانه براید یک کمک کمک دلش ترس است و از تاریکی و از یک پا بنام. میشه یک نفر از یک کم, کم صفات اگر چی صفات بد است که یک مسلمان باید این صفات را نداشته باشه؟ اگر ممکن است در بین 100 نفر یک نفر باشه بله ولی مسلمان ابدا دروغگوی نمی باشد زبان شفیف می باشه و همیشه راست میگوید والا او راستش به ضرر خودش تمام اه... اه... تنهایی م... بهتر از یار بد نیست مثلا یک شخص مسلمان میخواید دوست زیاد داشته باشه دوست فراوان داشته باشه ولی امون دوست که اختیار کردن بد از دوست نیک نیست خب آیا از که بهتر نیست که تنها باشم نه؟ همی یعنی که میگن تنهایی بی از بد بسیار فلسفی بزرگ داره. بله به سر نو بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد برای. بابدان شیش خاندان نبوتش که بشی پیغمبر بود گم شد بازیر مردم نمی که بچه پیغمبر است. بالاخره دوایت قرآن آمد که حلاک شد و از بین رفت و نوح علیه السلام آمد گفت که خدایا تو خود گفته بودی که من تو را غرق نمی کنم پسرمه گفت که لیسه من اهل, از اهل تو بخاطر که اهلتو نیست به خاطر که این انسان فاسق و فاژر بود که امرای مردمای کافر و بیدین و بی ایمان و کسانی که ضد خدا و پیغمبر بود تو این نشست رو از این خاطر شاعر چی میگه به سر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد بله سک اصحاب کهف روز چند پینکان گرفت و مردم شد بله اگرچه او یک حیوان بود لکن وقتی که با امراه مردمای های حتی خداوند نامشه در کلام بزرگ در قران از شان بوده نامش ذکر کرده بابتان کم نشین که بدمونی خوب پذیر است نفس انسانی وقتی که انسان کتی یک شراب خور بشینه تمام روز بالاخره یک روز از روزها و شراب خور میشه کتی یک زناکار که بشینه بالاخره زناکار میشه کتی یک قمار باز بشینه بالاخره قمار باز میشه بعضی از مردمهای بی‌عقل که عقل و, و این گپی که مثلا در بین مردم روا شده که با ست گروه آشنا باش با خدا باش امکار نداره نمیشه که یک نفر با صد گروه آشنا باشه و با خدا باشت کتر دوز آشنا باش با خدا باش امکار نداره کتر بدکار آشنا باشت انسان مسلمان از این خاطر ببینه در حدیث شریف حضرت امران ابن حتان مگه که قال اتیت ابادرین فوجت دوهو في المسجد محتبین بکسا این اگه آمادم که دیدم ابو ابو در مزید قرار تناشیشتم و گرفت خود یک پتوی قدیفه که سیاره هم در داده وحده و ترام میشه فقلت یا اباذر ما حلله الوحده من ای که تو قرار دهی کنی مجلس تناشیشی مجلس ساز فقل فقال, فقال سمعت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نگمه شوینم از رسول خدا صلی اللہ علیه و الوحدة خیرون, الوحدة خیرون من جلیس السوق دنهایی بهتر است از هم بد از که امراه یک کسی بشینی که بر تو فکایی بگویه و امراه یک کسی بشینه که فورا تلویزیون گرفته و برای تو رقصها و فلمهای گمراه کننده و اون دوها رو برات نشان بده که یک کسی بشینه که بر تو دروغ بگویه و غیبت مردمه بکنه و بحتان بکنه, بکنه, بکنه مردمه و گپای بزنه که خدا هم در از خاطر میگه که از این از جلیس سو کده از هم نشینه بد کردن تنهایی خوب است <تصفح> ول جلیس اما امنشین نیک خیر من الوحده. از تنهایی با بازو بهتر است چرا صحبت صالح ترا صالح کند وقتی که همراه یک انسان نیک ششتیم و انسان نیک مثل چی ورز داره یک حدیث شریف پیغمبر سوام میگه که ما تا لجلسه صالح مثلی می‌شویم mega مثل, مثل با المسک مثلی یک نفری که مشک و عنبر می‌فروشه عطر فروش است شما یک دوست تنهایی که است تنها می‌شینه نه نه منظور ما که شما یک دوست دارین عطر فروش است بله درست است ما جلسه صالح میگه خوب از تو بشینی شما یک کس را می‌شناسین یک دوستتان است عطر فروش است شما وقتی که پیش عطر فروش میرین عطر برتون نمیتن بله ولی از عطرش استفاده شخص میکنه دیم دوکانش که شیش جن بوی خوش داده ماختون ما وقتی که امرو یک دو سنی که تا شیش مثل میات الفروش واره گپ هایی که میزنه سخنایی رو که استعمال میکنه موضوعات رو که مطرح میکنه کلش بنافیتوز وقتی که از پیشش میخیزی میگه والا امروز پیش خانه فلان دوستم رفته بودم یعنی ده کلمه رو یاد گرفت اما انسان بد که دوست بعد مثل چی واسه ناف خیلی خلکیت مثل چورس مثل کسی که داغ اتش پف کرده میره بس. وقتی که پیش از یک نفر از دو است و او او اتش پف کرده میره در کوریا اینگری یک وقتی که سیل میخیزه که داغ داغ داغ لباساتون کورتیتان، کلش سوراخ سراخ شده چرا و بوی بعدم ده خانه گرفت یک نفر پرسان میکنه میگه یک قسم دود بو هست انسان دوست بد انسان مثل نمی نفر است که در آتش پف میره خاک باد میشه سر انسان جرقه های آتش جان انسان باد میشه لباس انسان بویناک میشه از این خاطر که یک انسان بد وقتی که میشینه انسان بغیر اون بدی ها و صفات بد زوبر انسان از این خاطر میگه که یک نفر از چی میشناسی؟ این نفر از از هم نیشینش مجردی که دیدی که کت فلان فلان فلان نفر نشست دار اگر نفر مردم نفرهای بد بوده فران میه که ای هم بد است اگر این بد نمی بود چرا به امروی بد رفاقت میکن کند جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اگر کبوتر است با امروی کبوتر میشینه اگر باز از به با امراه باز میشینه اگر زاغ از به زاغ میشینه تو نیست که زاغ به امراه کبوتر میشینه و کبوتر زاغ بیشینه نمیشه از این خاطر وقتی که یک انسان به امراه مردم بد میشینه در حقیقت خودش به دست خود خودم متهم قرار میتر شاید آدم خوب باشه بله البته okay. شاید آدم خوب باشه، لکن ما چی میبینیم که تو آدم خوب است یا خراب است؟ لکن وقتی که میبینیم که در مجلسی که میشینی که با مجلس کلش مردمای بدی هستن که به کارای بد ماشونه‌اند خودت خودم متهم ساختی دست خود. از این خاطر اگر میخوایی که متهم نشی، عملشنایت باید مردمای نیک اختیار بکنی. یعنی اختیار دوست در زندگی انسان در سازنمش زندگی انسان تاثیر بسیار قوی دارد. <تص> تنهایی گفتیم بهتر از یار بد هست و بیشتر هم یک سوال رو محته کردم که خاموشی فکر کردن بهتر است از سخن معنی و بیمقفوم گفتن و در اینجا من میخوام یک دفتر اشاره کنم که آیا خاموشی من در احادی ص متوجه شدیم که آیا خاموشی بهتر از شهست سال عبادت گفته در این شریعت اسلام ما چی نظر؟ در صفحه چهار سد و چهار دی مشکات المصابی حضرت عمران ابن حسین در دلت حالون بگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مقام الرجل بسمت افضل من عبادت ستی نسن بره. یک انسانی که خاموشی اختیار میکنه این از عبادت شست سال کده بهتر است یعنی انسان که نمیتونه سخنای نیک بگویه نمیتونه عمر بالمعروف بکنه نمیتونه مردم رو از کارهای بد نحیانون کار بکنه از کارهای بد مردم دور بسازه آرام بشینه اینم یک ساتن خاموش شستان از این بهتر است از شست سال عبادت کرده اما اگر یک انسان که میتونه سخن نیک بگویه میتونه به بالمعروف بکنه میتونه که نحیه کار بکنه میتونه کارهای خوب بکنه از این خاطر اون نفر کوشش اه... بکنه که گپای خوب بگویه مم. و بعضی از علما میگن که سخن اگر زهر است خاموشی گوهر است یعنی اگر یک نفر اه... سخن میگه ای... محوظور قیامودین جان بر ما مطرح کرده بود که اگر سخن کسمی زگرا میفهم که سخن ما است سخن خوب نداره از این خاطر از گوهر استفاده کنه گوهر خاموشی چی هستن گوهر است که از این گوهر استفاده بکنه و پیغمبر صلی الله برای کسایی که های نیک یاد ندارن و زبانشان نمیذارن که اگر که خوبه بهتره که خاموش بشه و 60 سال عبادت کمایی در دوامت‌های سابقه روزه چیز بوده که هر خاموشی بود. مثل که بی بی مریم میگه این نیست صمت الرحما، ها؟ اما گفته که در صوم من یاد کرده بودم روزه را که به من قصه‌ایش آمدند. در دوامت‌های سابقه خودمی خاموشی یک قسم روزه بود به نام روزه خاموشی. بله. ولی در امت پیغمبر صلی علیه و علیه وسلم بهترین کار چیست؟ که انسان زبان خود مثبت استعمال بکن و کوشش بکنه که اینمی انسان عمر بالمعروف و نحیان المنکر بکنن و اگر نمیتونه بهتر است که خاموش بیجید خب آیا این امی خاموش بودن مخالف و یا راهنمای حضرت پیغمبر نیست که اصلا در جامعه هم فهس فساد رواش شده میره کارهای بد رواش پیدا میکنن و مسلمانم خاموشیکتر کنن. خب ما بر تون گفتم که یعنی وظیفه مسلمان چی است؟ بله. وظیفه یک مسلمانی است که من در آمین کمون کردن. ببینید ایمان استاد فیصد. بله. من در آمین کمون کردن، فرقی غیرهو بیادیه. بعد دست خود کوشش میکنه، اموم بدیره محبو بکنه. آه. فان لبی استطع. اگر نمیتونست فبی لسانهی باز اینجی ایمانش پنج فیصد است. به زبان خود یک نفرم بگم فلان میسته فقی قلبی اینال ما و شما اصلا وظیفه مسلمان چی هست که باید مردم به نیکی دعوت بکنن بله بله. سخن های نیک بکنه تدریس بکنه درس علم بر مردم بفهمه ولی اگر امی کارا رو نمیتونه چی باید بکنم باید از بدی ها بکنه بکنم و خاموش بینچینه در وقت ضرورت گپ بزنم بدون ضرورت گپ نزنه باز فیشش پویم نمیاد نظر با می... م... فیصد ایمان شد فیصد ایمان شد طبعا فرق میکنه باین یک کسی که مثلا بدیر اگر بینی که نابینا و چه هست باز اونجا خیگه پس نه اگر بینی که نابینا و چه هست اگر خاموش بینشینی گناه هست بس شام کم نمیگی به گناهکار راه گرد شو میشه بله وقتی که بینی که نابینا نابی و چه هست وقتی که میبینین که مشکل از شما میبینین که در فامیلتون برادر خودت نماز نمیخونه بله, بله. میبینی که برادر کوچکتون 24 سال مسوف تلویزیون است و از دین خدا خبر نداره بله بله. میبینین که در فامیلتون یک نفر است نام 200 سندوره یاد داره نام دو صحابی رو یاد نداره خو خب اگه خاموش بشینه باشا مادر باشه مادر باشه فامیل باشه دای قسمت مبتلا به گناه میشه حداقل کوشش بکنه که برای از اونها یگان قصه یگان سی دی چیز خوبی برای اونها مطرح بکنه تا اونها استفاده ی مثبت بکنه این قسمت کدام مسائل ضمانت جنت میکنه؟ یعنی یک مسلمان کدام نکات کدام مسائل امرات بکنه که تا او داخل به جنت شود نمیاریم شما مختصرا نام بگیرین خوب است خب من چون گفتند ما مستقیما حدیث پیغمبر صلی الله علیه و میخوانم که ده. حضرت عباده ابن ثابت را الله تعالی روایت میکنه که ان نبی صلی الله علیه و سلم قال ببینید صفحه 415 مشکات المسابيح چی میگه مهم. میگه پیغمبرستم گفت که اامنولی ست تن من انفسکم اامنولک الجنه شش چیزه به من شما ضمانت بدید یعنی گفت که شما شش چیزه چی کنن زمانت بکنین که ما این شش چیز محافظه میکنم. پیغمبر هم گفت ما شما زمانت جنت میکنم. این حدیث پیغمبر سم برای کلیگه قابل تطبیق است. چی است؟ وقتی که گپ میزنین راست بگوییم. اول زمانت بکنین که ما همیشه راست میگیم دروغ نمیگیم. یکی. و اوفو اید وعدتم وقتی که وعده کردین به همراه یکی است. وفا بکنین؟ مم. امروزی ما وعده میکنید که مسافت دو بaje پیشین و ما شش چند ساعت 4 بaje هم شما روز نرسیدن یک ساعت وقت برای دیگ کنیم، 1 ساعت و خورد. در ساعتی وقت وقتم سر پول ارزش داره. ارزش داره ولی وفا بعد. بله. وقتی که وعده میکنید برای یک نفر هر چیزی که وعده میکنین، وعده مثبت میباشه، باید دوره ادا بکنید. بله. و اذ ایتومنتوم وقتی که برتون یک کس امانت داد، باید امانتش با وقتش بسپارید بس بسیاری کسا چی عادت دارن مجاید که برش یک ده متر تکر دادی ده متر تکر دادی و برش گفتی که برادر عزیز اینی ده متر تکر بگیرین و شما از فلانی شهر میین به شهر دگه اینی ده متر تکر امانت است به شما همی ده متر تکر که مرا بگی تا قابل بر برسم برسم یک وقت میان که دو متر شوه وقت قیشی کرده باز برد مگم, مگم بیدر و دو مترش شوه خانه خوش کردن وارا ما کرد این حال امانت خیانت نکنین ویا چی ویا این که میگه که دو تا سی تا شد نی وحفظ فروجکم شرمگاه هایتان حفظ بکنین ام از نگاه سطح عبرد ام از کارای بد افسار و افسارکم و چشمایتان از دیدن نامحرم ها و از چیزهای بیهوده محافظت بکنید و کوف و و از ذره رساندن و نزدیک کردن به بدیها ها و به گناه ها حفظ بکنین این اینی شش چیز هست که اگر کس ای را بتانه که تزمین بکنه بایغم برسان میگه من تزمینش میکنم که بجنت برم شش نکته اینجا شما یا یادوه که شش نکته مثبت بود و در مقابلش شش نکته شش موضوع منفی بودن در همی موضوع ما کدام مردم ها بهترین مردم میتونیم انوان کنیم و کدام مردم کدام اشخاص میتونیم بدترین مردم انوان بکنیم درست ازاده عبد الرحمن بن غنم واسماء بنت يزيد ميك النبي صلى الله عليه وسلم قف كي بيهترين خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء اینجا میگه پیغمبر صلی الله علیه و گفت گفت که خیار و احباد الله آلذین اگر رؤو ذکر الله بهترین مردمان کدام مردم هستند میگه کسای هستن که وقتی که شما آنها رو ببینن خدا به. باید تان بیه. مشارد کامروشن ملاقات میکنن ببینن که این انسان کار میکنه که خدا را به یاد انسان میده یعنی صحبتشان مجلسشان گب زدنشان قصهشان همه چیز از اینا چی هستن حکم خداست وقتی که اینا رو ببینین خدا به یادتون می هم. و شرار عباد الله و بدترین بنده های خدا کیست؟ است المشا اون بنمیما کسانی که چی میکنن سخن چینی میکنن المفرقون بین الاحبب در بین دوست ها تفرقه میبردن این بدترین مردم هست <تصفيق> ایناله اگر ما میخواییم که از جمله بهترین مردم ها باشیم باید کاری بکنیم که وقتی دیگرها ما رو میبینه خداوند به یادشان بیه نماز بخوانیم، روزه بگیریم ذکر بکنیم عدیقل دیوار خانه خود نام خدا رو نصب کنیم عدیقل وقتی که تلویزیون چالان میکنیم یک سیدی یک فیلم اسلامی و ایمانی را یک درس برشان پرتیم تا کنا خدا را بیاد یاد برن و بطلی مردما کس بطلی کسی هستند که برعکس چیزی هستند وقتی که ببینیش و غیر از بدگویی مردم و با غیر از ده مردم انداختن کار دیگه نداشته باشه من سر موضوع اصلی تقریبا موضوع می پس بگردم به طرف موضوع اصلی بحث خودمون که در مورد غیبت بود آیا غیبت بدتر از زنا هست شما در مورد؟ بله پیغمبر صلی اللہ علیه میگه پا گفتم ما چی بگویم؟ برای. برای. ما هیچ چیز نزیاد کرده نه کم کرده میتونیم. بله چیزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته اونمون رو برای مسلمان ها بیان میکنیم بله ببینین در حدیث شریف در صفحه چارصد و پانزه مشکات المسابیه عن ابي سعيد جابر قال مكة دو صحابين برا گفتن که قال رسول الله سلام الله عليه الغیبت اشد من الزنا غیبت از زنا ک هم بدتر است قال یا رسول الله مگه مردم گفتن که ای رسول خدا و کیف الغیبت اشد دو من الزنا غیبت چطور از زنا ک برتر است قال ان الرجل لا یزنی فیتوب فیتوب الله علیه یک نفر زنا میکنه و باز توبه میکنه خداوند توبه ازیره میپذیره بله متوجه شده وی روایتین فتوبه فیغفر الله الله در روایت دیگه میتوامده که اگر توبه میکنه خداوان ایره و این صاحب الغیبت لا يغفر الله حتى یغفرها له صاحبه اما غیبت کرد میگو تو ایره خداوند نمیبخشه تاکه اونمو جانب مقابل ایره عفو کنه و بخشش کنه الان مشکل ماده است که یک نفر که غیبت میکنه در حقیقت اینمی غیبتگر کار بدیره کرده در مقابل یک انسان دیگر خداوند حق خدا میبخشه مم. متوجه خداوند حق خدا میبخشه و حق یک بنده را تا وقت نمیبخشه تا که خودو بنده حق خدا بر تو ببخشه اینال وقتی که یک نفر غیبت میکنه تا وقتی که اونمون نفر که غیبت شده ایره نبخش خداوند ایره نمیبخشه بنا این گنایش از زنا کرده هم بدتر شد بله. چرا به خاطر که زنا خداوند اگر یک نفر توبه کنه خداوند نمیبخشه بله اما از غیبت نمی بخشه تا وقتی که خود اونمون نفره ایره عفو بکنه از خاطر انسان کوشش بکنه که از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه میگه غیبت چی هست از زنا کرده هم بدتر است کفاری غیبت چیست خب کفاری خب غیبتی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله انان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان من کفاره الغیبت ان تستغفرا لمن خ... لمن خطبته بله می کفاره شی است که بر کسی که غیبتش کردی تو به خداوند دعا بگی که جناب این پادکست از اینا هم بدتر است خب وقتی که پرسان شد که چرا غیبت از زنا بدتر است پیغمبر صلی علیه و وسلم گفت که غیبت از زنا بخاطر زیبتر است که اگر یک نفر زنا میکنه و طوبه میکنه دوره میبخشه بقید. اما از غیبتگره تا وقت نمیبخشه تا که اونم او غیبتگر از کسر که غیبتش کرده از او او نبخشش و او عفش نکنه حزی ای خطر این خطرناک‌تر شد بالا سوال کرد سوال محترم خلاصا کردم می‌ریم ام کفاره غیبت چیست اگر مختصرا در این مورد یک صحبت من وقتی که گفت کفاره غیبت چه حضرت انس و حضرت اون هم میگه که قال قال رسول الله صلی الله علیه و salam ان من کفاره الغیبه ان تستغفر لمن اغتبته فارغ غیبتی است که برونمو کسی که تو غیبتش کردی مغفرت از خدا و متعال چله چله خب بعضی از میگن که بری برای کسی که ما غیبت کردیم و ما عیادت کردیم برای اون مقابل و از اون مظرت بخاین بعضی علما میگن که نه اگر یک نفر پیش کس برای غیبت ما غیبت تا کردیم ما رو بخش شاید و انوس خفه شوه عزی خاطر مگه بهترین راه این که انسان غیبت ترک بکنه دیگه غیبت زرا نکنه و به خاطر ازی از که دل خود ازی پاک شوه و خرواندی رفع بکنه باید بر هم کسری که غیبتش می کنی چرا غیبت میکنی به خاطر ازی که او بسیار بدت میایه برای او توجه سن خود غیبت کردن از چی پیدا میشه اگر یک کسره دوز داشته باشی والا کو 10 هزار ایام داشته باشه غیبت چرا نمی اما غیبت کنی میکنی غیبت کسره میکنی که او بدت میایه ازی خاطر تو باید خود رو بکنی چه قسم محالجه میشی که برونه کسی که غیبت کردی از خدا مغفرت بخوای وقتی که از خدا برازی مغفرت خواستی معلومدار واسط صدق معلومدار تو با امراض و عمود دشمنی و کدورت و بدیها رو دور کردی خداوند سر رحمه میکنه و خداوند انسان رو میبخشه برنامه امام تقریبا بر آخر خود میگسم عنوان آخرین سوال شما چی مشوره میتونی برای جامعه, جامعه افغانی ما و برای مسلمان ها مختصن در این مورد اگر صحبت داشته باشیم؟ خب من چیز زیاد گفتا نمیتونیم صرف نقاط را که میخواییم عرض بکرم اینمی است که دوستای محترم خواهرها و برادرای عزیز ما و شما مسلمان استیم ما و شما کلیمه میخواییم که لا اله الا الله و محمد و رسول الله صلی الله علیه سلم و وقتی که ما شما کلیمه میخوانیم هدف ما شما اینمی هست که خداوند بالای ما رحم بکنه و رحم خداوند وقتی نصیب ما میشه که ما با بالای دیگر مردم مهربان باشیم این مهربانی که بالای دیگرها داریم و بردیگرها باید خیرخواه باشیم این چه قسم ثابت میشه یه در صورت ثابت میشه که ما واقعاً مردم دوست داشته باشیم مسلمان را دوست داشته باشیم عیب کسره نه در روی خودش بکشانیم و نه هم عیب به روی بر دیگران بیان بکنیم غیبتشان نکنیم و به نظر ما همیشه خیرخواهی باشیم و کوشش بکنیم و زبان خدا پاک و عفیف و تاهر نگاه بکنیم از دشنام دادن از طعنه‌دادن از لعنت گفتن از این زبان خدا دور بسازید خصوصا بعضی خانم ها و بعضی برادرایی هستن که برای یک تفل معصوم میگن که او طفل در به خدا شوی او طفل خدا تو را کنه او طفل چطور او طفل ماسور است وقتی بور لحنت خدا را میگه او میره میره میره می پس اصلاح می نفره که ایده لحنت خدا را میکره سر از از این خاطر ما از اینی اجتناب بکنیم و بدربار خدا و متعال جلجالوه جل رو جو بکنیم از غیبتگری غیبت خدا حفظ بکنیم و زبان خدا به عفت و پاکی و همیشه به خیر خواهی و با دوستی با مسلمان ها خدا عادت بتیم و با پاکی زبان خدا عادت بتیم از گپایی که نفع نداره و ضرر مسلمان ها هست و دوری بکنیم این است این کارا وقتی ما بکنیم میتونیم که در بین دوستا برادرای خود مثل یک انسان مسلمان از دیودت مرولمو انسان مارزوست انسان که انسان کسیست که با شخصیت انسانی با مثل سیرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم باری زندگی بکنن همیشه با دیگران خیر باشه، باشن با دیگران محبت داشته باشه، با دیگران نفش برسه و وقتی که نفش نمیست ادقل ضرر خود خونه رسانه بخص خودم در اینجا ختم میکنیم و از توجه شما یک جهان تشکر برنامه ما ادامه داره. شما برنامه مراه همیشه تعقیب کنین. و از تشبابری استوازم هم دوباره تشکری نکنیم. تشکر از شما هم. سبحانک اللهم و بحمدی که. اشهدو اللہ اله الیلی الله و استغفر که و توبو الیک. اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد. کمان صلی تعالی ابراهیم و علی